نسل هفتم شیگه ماتسو بی وخفه یاد های بمباران اتمی را رو نویز روز کاشت و آین نیایش و پیشکش برای حشرات در این ماه پایان یافته بود اما جشن برنجکاری در روز یازدهم، هم جشنواری فصلی سوسن زرد سابق در روز چهاردهم، جشن کپا در روز پانزدهم، و جشن بریدن خیزران در روز بیستم پیش رو بودند. همین چند جشن محقر از قدیم نشانه اهمیت دادن به زندگی از سوی کشاورزان فقیر بود. شیگماتسو در حالی که رونویسی را ادامه میداد با به یاد آوردن آن مکان جهنمین احساس را پیدا کرد که جشنهای کشاورزان هر اندازه هم محقر باشد باز هم دوست داشتنی است. به ایستگاه شهرک کامیا رسیدیم. اینجا محل طلاقی خطوط ترانوا بود برای همین سیم برق خطوط و نیز کابل‌ها قطع شده در هم رفته و آویزان بودند احتمال جریان داشتن برق در یکی از آنها بسیار ترسناک و خطرناکشان میکرد رشته سیمی بیوقفه جرقه میزد و نور پرید رنگی می پراکند. آوارگانی که به ندرت از آنجا رفته آمد میکردند از زیر سیم ها می خزیدند. ما به سمت چپ مسیر رفتیم و خواستیم با گذشتن از پل آی آی به شهرک ساکان وارد شویم اما گرمای خاکسترها آنقدر شدید بود که نمی توانستیم جلو برویم. خواستم به راست بچرخم اما گرمای هولناکی به تمام بدنم خورد و عقب کشیدم. حرارت آنقدر شدید بود که بتواند آدم را عقب براند. بعد وقتی به ساختمانی به سبک معماری غربی نزدیک شدیم زغال گداخته بزرگی به طور کامل فرو افتاد زغالی که از سوختن چارچوب پنجره جا مانده بود چارهای جز گذشتن از وسط شهر نبود سیمهای برق اینجا و آنجا پاره شده بودند پس نمی‌توانست در آنها جریان برق وجود داشته باشد اما در محل طلاقی ها سیمها به هم وصل شده بودند پس ترس از جریان برق باز وجود داشت زیر یک رشته سیم آویزان سه جنازه سوخته زن و مرد افتاده بود ما هم سه زن و مرد بودیم هی hey, دقیقا از جایی که من میگذارم رد شوید به هیچ عنوان به ها نخورید من ها رو کنار میزنم اگر برق مرا گرفت به غیر پیراهن هم جای دیگری را نگیرید باشد لبه شلوارم را نکشید کار بی های دیگر را تقلید کردم با تک چوبی ها را کنار زدم در جایی که لازم بود، چهار دست و پا می شدم و در جایی که خزیدن لازم بود، می خزیدم. هی، hey, شما هم مثل آنها به آرنجتان حوله بپیچید، چون آرنج به سطح زمین می خورد، حوله محافظتش می کند. اغلب جاها نیاز به خزیدن بود. سرانجام بدون مسئله گذاشتیم و سه نفری به هم نگاه کردیم. شیگکو هیچ زخمی بر نداشته بود، اما یاسوکو؟ چون حوله را بد پیچیده بود، آرنج چپش خراش برداشته بود و می سوخت. شیگکو روی سنگی کنار خیابان، بغل یاسوکو نشست و با پارچه ای گوش، آرنج را پانسمان کرد. ناگهان متوجه شدم آنجا جلوی در خانه آقای اومورو است. انگار این سنگ سنگ باغچه خانه آقای اومورو است. خانه آقای اومورو، خانه قدیمی و متعلق به دوره ادو بود، مالک آن آدم ثروتمندی بود که در رشته نخ تابیده تحقیقات علمی انجام داده و سه کارخانه ریسندگی را اداره می کرد. او درباره تابلو خط و نقاشی عتیقه هم سررشته داشت. من در یک سال گذشته برای مشورت در مورد محصولات ریسندگی چند بار به این خانه سر زده بودم. امارتی عالی با, با باقی به سبک قدیم و چشم نواز بود. اما اکنون به کلی از بین رفته. و اطراف جایی که امارت و دیوارها بودند تبدیل به دشتی از تکههای آجر و سفال شده بود بیشک سنگی که شیگکو روی آن نشسته بود از داخل باغ امارت به اینجا پرت شده بود سنگ سنگ بود اما پوستش سوخته بود این سنگ سنگ خاراست سنگی که تا صبح امروز پوشیده از خزه بوده شاید خانواده ی آقای امورو همه سوخته باشند خاکستر ناجوری بود در اطراف محل چشم در حیات، لجن سیاهی به صورت ناهموار پخ شده بود. در قسمت پایین که خاک ها کوفته مانند برهم انباشته شده بودند، سه اصل درخت بسیار بزرگ کاج سوخته، نابود شده و افتاده بود. کنار تنه کلوفترین آنها، فقط یک ستون چهارگوش باریک از سنگ ساگا به شکل عجیبی و استوار داده بود. چرا فقط همین ستون سنگی نیفتاده بود؟ زمانی آقای امورو گفته بود که این ستون سنگی را یکی از اجدادم برپا کرده است. ارتفاع ستون سه متر بود. شست سانتیمتر پایین تر از بالای ستون کلمه آرزو حک شده بود. این کلمه را راه به بودایی بزرگی نوشته بود. اما در چنین موقعیتی چیز چشم نواز و خاصی نبود. شیگکو و یاسوکو کاملا رنگ پریده بودند. خودم آنقدر تشنه بودم که میخواستم روی زمین چنگ بکشم. وقتی راه میرفتم چشمم گهگاه تار تار میشد، چشمم درد میکرد. و در حالی که با انگشت بالای ابرویم را می‌مالیدم راه میرفتم. دردی نرم و آرام بود. شیگکو و یاسکو تا حدی سر بودند و درباره بزرگی، شکل، رنگ، شکل پا و حرکت ابر عروس دریایی صحبت میکردند که اکنون دیگر سایاش محو شده بود. فکر کردم درد چشمم به خاطر رسیدن خون زیاد به سرم است. پس یاسوکا برای درمانم کاری انجام داد که در کودکی هم هنگام خون دماغ انجام می دادند. او ستاره مو از موهای پشت سرم را کند. با این روش کمی درد تسکین یافت. به نظر می رسید باران بباره. پادگان غربی تبدیل به صحرای یک دست شده بود. کویر وسیعی را به یاد آوردم که در فیلم مراکش دیده بودم در فیلم کویر پوشیده از ریگ بود و رد پای هیچ انسانی در آن دیده نمی شود. اما در صحرای پادگان بوی دودی شناور بود که بادی داغ آن را می پراکند و چندین رد پا وجود داشت که به سمت کوه رفته بودند این صحرا پوشیده از چیزی مانند شن ریز بود که بر آن سراخهای به بزرگی باقلا دیده می شود. روی صفحات روزنامه پخش شده هم خالهای سیاه بیشماری به بزرگی یک باغلا نقش بسته بود. جای باریدن باران سیاه بود. فهمیدم که پای ابر دریایی رگبار تابستانی بوده است اما به ذهنم هم خطور نمی کرد که قطرات باران به این اندازه بزرگ بوده باشند. در کناری سمت غربی صحرا چیزهایی مانند گوی سیاه افتاده بود. اول نفهمیدم چی هستند اما وقتی نزدیک شدم فهمیدم توده ورقهای حلبی هستند به نظر میرسید باد بر آنها وزیده به آسمان بلندشان کرده در حین رقص در آسمان به وسیله حرارت نرم شده به وسیله باد در هم پیچیده شده و مدور بر زمین افتادند ظاهرا در تنوره آتش کشیده شده و در حال رقص آرام آرام گرد شدند به سمت آن صحرا برگشتم و نگاه کردم فقط یک نفر با گام سری به سمت کوه در حرکت بود زیر شلواری پوشیده پیراهنش در باد رها و شکمش اوریان بود آن شخص با گفتن هی hey! دستش را برای ما تکان داد منظورش چه بود نفهمیدم ما به شمال رفتیم کنار ایزدکده گوکوکو نگهبانی با همایل تفنگ ایستاده بود وقتی نزدیک شدم دیدم نگهبان که به دیوار تکیه زده بود با چشمانی کاملا باز مرده بود به درجه روی یقهش نگاه کردم سرجوخه نیروی زمینی بود هرچند با سی و هفت هشت سال سن سرباز پیری می نمود اما چهره جوانی داشت آه شبیه کیگوچیکو هست این را شیگه گفت در واقع من هم کیگوچیکوه را به خاطر آوردم اما شیگه کوراس سرزنش کردم بی ربط میگویی این اطراف به محل اساوبت بمب نزدیک بود در گوشه غربی قلعه هیروشیما جوانی که به نظر می رسید پیک قضا باشد سوار دوچرخه جعبه قضا در دست بر سخرهای سنگی تکیه داده و مرده بود جوان نظار و بسیار لاغری بود مانند ملخ شاخک بلند قبلا در تمرینات دفاع هوایی به ما آموخته بودند که هنگام بمباران مدام نفسمان را بیرون بدهیم. شاید نگهبان و این پیک جوان لحظه انفجار بمب نفس کشیده بودند. از لحاظ فیزیولوژی نمیدانم اما احتمالاً برخورد موج انفجار در لحظه دم به قلب و شش فشار وارد می کند و باعث مرگ ناگهانی می شود. کمی که این طرف دیوار رودخانه توقف و استراحت کردیم، سرپاسبان ساتو سوسومو به ما اشاره کرد. آ سلامت و هستید. این را که گفتم، او گفت. وای، صورتت زخمی شده. مدتی ایستاده حرف زدیم، بعد جدا شدیم و رفتیم. ظاهرا بازرس اتسوکا از بازرسی کل چوگوکو، یعنی محل خدمت آقای ساتو، زیر آوار سوخته و مرده بود تا الان نمیدانستم آقای ساتو از مرکز پلیس به بازرسی کل منتقل شده است از وجود اداری به اسم بازرسی کل هم خبر نداشتم شاید هم به دلیل بی توجهی ام بود با توجه به سخنان امروز آقای ساتو عملات دشمن در این اواخر بسیار شدید شده بود بنابراین خاک اصلی ژاپن را برای تعیین سرنوشت جنگ آماده میکردند برای آمادگی جنگ جنگ‌های مستقل و ناهمخوان مناطق مختلف ژاپن، نظارت منطقی به نام بازرسی کل ایجاد کرده بودند. به این دلیل در کارخانه‌ها و مدارس ابتدایی آن ناحیه ملزومات زمان جنگ را انبار کرده بودند. وقتی اینها را شنیدم گفتم: «پس شعار جنگ تازه آغاز شده است، منظورش همین است، نه؟» آقای ساتو گفت: «یک جورهایی به خاطر پیشبردن سیاست کلان کشور ثروتمند ارتش قوی است سیاستی که از پنجاه سال پیش وجود دارد اما سوی برداشتی هم هست که میگوید این آغابت سیاست کشور ثروتمند ارتش قوی است ما اینجوری تربیت شده ایم این تقدیر است بازرسی کل چوگاکو داخل دانشگاه علوم انسانی هیروشیما قرار داشت و بر پنج شهرستان ناحیه نظارت می‌کرد ظاهرا بازرس اتسوکا موجودی شبیه به سامورایی های قدیم بود بازرس کل هنگام افتادن پیکادون در اقامتگاه خود در شهرک کامی نگارکاوا بود و زیر آوار گرفتار شد خوشبختانه همسرش چهار دست و پا از زیر آوار بیرون آمد اما بازرس کل نتوانست خارج شود همسرش مردد مانده که چه کار کند که بازرس کل سه بار محکم به او میگوید برای مرگ آمادم سری سریع کند. آتش هم به آن نزدیکی رسیده بود، پس همسرش سرش بیدرنگ فرار کرد. فقط استخانهای بازرس کل بر ماند بسیار ناگوار بود. من هم از آتش فرار کردم و سرگردان شدم. آقای ساتو این را گفت و اشکش سرازیر شد. او معمولاً آدم بسیار خوش صحبتی بود و تماشای گوشه یابروهای ریختش احساس خوبی در آدم ایجاد میکن. اما امروز چشمانش خونبار و چهرهش گرفته بود. وقتی کنار رودخانه رسیدیم، پل میساسا از وسط شکسته بود. نقشه را عوض و برای گذشتن از پل آی آی از کنار رودخانه به سمت پایین دست رود حرکت کردیم. داخل علفهای سمت راست پایین لبه رودخانه جسدهای بیشماری افتاده بود. درون رودخانه هم یکی بعد از دیگری جنازه شناور بود. جسدی بر ریشه‌های درختان بید ساحل رودخانه گیر کرده بود. با فشار آب دایره وار می‌چرخید و ناگهان صورتش بالا می‌آمد. در آب تکان تکان می‌خورد و بالاتنه یا پایین تنش به نرمی در سطح آب ظاهر می‌شد. در حالی که به ریشه گیر کرده بود، انگار می‌خواست شاخه‌ها را بگیرد و دستش بالا می‌آمد. اما به نظر نمی‌رسید زنده باشد. از دور توانستم ببینم که وسط خیابان کنار رودخانه زنی دراز افتاده و مرده است. یا سوکو که جلو حرکت میکرد با گفتن امو به عقب برگشت و زد زیر گریه. وقتی نزدیک شدم دیدم دختر بچهی سه ساله لباس جنازه را باز کرده است و به سینه های او چنگ میزند. نزدیک که شدیم دو پستان جنازه را محکم گرفت به ما نگاه کرد و چهره نگران به خود گرفت. آیا میشد کاری کرد جز این فکر کار دیگری انجام ندادیم به هر حال طوری که دختر بچه نترسد از سمت پاهای جنازه گذشتم و با گامهایی سری حدود ده متر پایینتر رفتم در آنجا هم 4 جنازه زن یک جا روی علف ها افتاده بود روی آن جنازه ها هم پسر بچه 5 ساله خمیده گیر کرده بود هی hey, سری بیایید دل داشته باشید پاهایتان را در هر دو طرفشان بگذارید و آهسته رد شوید آن طرف آن به صورت آهسته بگذرید و بیایید تا دو دستم را بالا بردم و فریاد زدم یا سوکو و شیگهکو هم به همان ترتیب آمدند وقتی تا پای پل آی, آی آی آمدیم فردی را دیدیم که گاریش را به گاوی بسته بود و روی خطوط تراموا همراه گاوش نشسته و به همان حال مرده بود تنابهای بار باز شده و بار ریخته بود در اینجا هم بر سطح رودخانه جنازه های بی پایان شناور بودند سرشان به پایه های پل برخورد می کرد و جهتشان عوض می وسط این پل حدود یک متر برآمده بود و در آن برآمدگی که مانند تاج موج بود جوانی با پوست روشن و موهای طلایی به شکم افتاده با دو دست سرش را بغل کرده و مرده بود سطح پل تغییر حالت داده و شکل موج گرفته بود. وقتی به حوالی شهرک‌های ساکان و سرازایا رسیدیم فهمیدیم که آتش کاملا زبانش را بر شهر کشیده و آن را لیسیده است. ناشهایی که فقط بالاتنهشان تبدیل به استخوان شده بود، به این معنا بودند که جز دو دست و دو پا بقیه تنشان سوخته بود. آنها به شکم افتاده بودند. جنازه های مختلف دیگر هم اینجا و آنجا افتاده بودند و بوی عجیبی ازشان بلند میشد. چیزی نمانده بود استفراغ کنیم راهی برای خلاصی از این بوی تفون نبود.